جغرانی خوشویی است. سلطان لبی خوشحالی لباسی هشت و هشتی خواند نویتی به چیشتم جیوری هزاری مکریانی های نولتان فرمن لگالمان بن. هجاری مکریانی بردام در بیلست گیرانوی او سات و روشانی کل موسکو بسری بردون او دنوسه روش یک دگل کمال چوی ندیدنی غفوروف شرپنامکهی لپیش بو زوری افریم لیکردم کردم و تی هجار بقسم بکور موسکو خانوت باور دگرم لم انستیتیو تا کرمن بطو زور دبی نخواز که و معاربی و فارسی و کردی چهگ دزنی من دالت زور باش دخواننن خوشت زور خوشباریده چی؟ هر یستا با خبر بینیرم مال و منالکت بین موسکو تو ما چووو؟ گوتم زور سپاسد دکم بالم تامل مصطفیم نیبوی لی دور نکوموو اگر او پیم بله دیم و پیم خوشم کمال رویشت با سالونی کتبخنده و غفروف فارسی زمان بو تاجیک بو جگل سروکیاتی ام انستیتیو تا سیاسی حزب کمونیستی شوروی اندامی خیبالا بو کورسيه کیه نه پیشوګتی هجر من زور دوستی بار زانیم سیاسی حزب دا دوستی هن بل امهشن کنا خوش یاندوی یسته قازنج شوروی لودایا که هیچ شل عراق دا نه جا که عراق دا وای جبهه کی گرتو د حزب بعض حزب شریو حزب پارټی بارزنی دا پک به به مصلحت سیاسی بالا شوروی منو بابال زانی بل اخو نه کړو بچتا وختم جناب د ځانم شورا یو هم دولت د روانه ته قازنج خو لشه مرونه ایو باسی د ناسن کچن خوین دور له همو پیمانو قانون یکن بل حزب شیعي له او قتلوا عامي باسی لیان کړ ب امر ایو چونته بلدستي باسو یستا بږه امدادین اگر نه نه جبهه شر حل گیر سیته یرمتی دولت کی باسی بو او جبهه کی شاو اشکره هرچی حقوقی ملی ایمه و هرچی دوای حزبی کومونیسته دمالیه توا. دبینو کری، القبه جوی بعض بین. پازده ساله شروع لیک دان مانا. هزاران لاوی کورد لم رایگه دا خوانی رجاوا. به هزاران مال سوتین راو ویران بوا. چون باور بکم بی بیورگردنی هیچ حقیق دست لسر دست دانی. چی جوابی گلی لیک قومه و که بداتوا؟ آیا شوروی دست برده بی که بعضی خ پیمانی که داییان پیکی بینن؟ کو او شرط شورای دگریت استو. اگر هر مصلحتی شورایی او ناتان کره حق من با بچهس بیانن من وای پاش دعا زص هالگراینو سرختی هوا لیو. او جر بعضی طولی او چند سالش من لیه کنوا. رفروف من خم باور نکم بعضی پیمان برن سر باور نکم جبهه بتوای نگرند اسخوان تن آنات باورم نیا کشیعه کانج. لداز باز آسوده بن بلا موک پیموتی مسلحاتی شوروی اویا عراق یک پرچو بیکی شو هرابی شوراوی بشلی ناتوانی عربان ناچاربکا پیمانیان کبکور دوا پیکی بینن بلا مدالیم زور لا سیاست مدارانی شوراوی دینوی عراق هیچ که شو سریشه تیدا نبی اگر بارزانی امش قبول بکا دیار زیانیتی بلا ممکن فرسته کی تر حل کوه گوتم باشه هموشتی کی پیدالیم کیفی ک شریک میوانی پروفسور بکایف بوینک کردی کی ارمنستانیو ماموستایل دانشگای زماناکانی روشلات برلا شام پروفسور قناتی کردیشات که هاتب بو موسکو فرهنگی روسی کردی چاپ بک در دیدل حال پریشان کرد کرا بکایف گوتی که چی گیوی مخریانی بناوی کردستان هات وکل اثر زمانی کردی تحقیق کا بخوینه پیم خوش بو کبه منیان سپارت. پیم ووت کچم لکام زراوی کردی داتوی تحقیق بکایو دکتورا بستینی حوش وتواتی لازمان امام حسین حزنی دا چون کنه مزانيب حسین حزنی زمانه کی سربخوی حبوا خو نه درس پیگوتنی کی شایو پیم گوت زور لوانی ل روسیا درچونو هاتون عراق نه یندکتورو هیچ نازان بکای فوتی چنجارم پیوتی زور که سن دی نه را با سن و بلاوی تعصب کوردااتی کارنامه امد اوانه دستنه ولا کردستان دبنو مامستا مش کی هزاران کورو کی هر گوتت آخر کردند چون دریان نشینم قناتی کردیف خریگ بو شام نخواه بر رو بزرگ دامن نیاو آشتمن کردو وا بلام گوتمان حق با بکایفا روزک چون دانشگای زمانانی روشلاد بزم بو یک عربی دو فارسی یک اردو سی پشتو زمانی سیر سیر درست دخون را تو شی کی تاجیک بود نا لبیر بیرون ماه ما مستای درسی کردی و تحقیقات لدوری مسالی کرد. توانی من باهوی دکتور پالیووی بلیتی بالشوی تاعتر پیداکین. او پرای کارمن بو. لدکتور پالیووی امپرسی؟ تو لگل او پالیووی که پالوانی دستانی پیوکی براستی که فراکوان یک بو او لپش لغ پرین دو برا بو تا فراکوان خزمی؟ گو تی نه نا هر نو منویگ ده چه؟ او دکتورش نکی تا تر بو. کوری که ها بو لتمنی پازده سال. دی گود سلامستان شکایت او ملکه كانوا هم جارش د نوسن نکی د لیبرنجی یعنی چی دلن ریاضاتی زور بهیز او لوانی به بت زانه کی اتوم ام جارش نزدیک مانگ یک لروسیه ما مو راج کدهاتن بروین فتح غریه وثمانوچیا و تی لتولیز لیک جو بوینوه پاش 14 سال یک تری ماندیتو چویو عراق پاش 14 سال لیسان بیتمیه وا ای زمانہ چهارده سالی این دنای جنب بهن ماه رئیس پردم کل بغداد و آلمنجدو نجول بلاغی بو بنیارم بوم نرد. حالا بیست مکل انقلابی اسلامی در نرد راب و توریس کفیر قزندوکاتو نشریع آذربایجانی بنویسه. چوبو خصلجیل ترندی تبو. و توی هیچ مبنک را او کس آماده نبود حاکریم که دستم فرانسوی دستم موسکو. سلامی بنارده بو بوم، خوی نهات بیبین ما و ام بینکا پیکاو بوین با بو یرامو کماوی شش من دگل خزلجی لبلغاریا جیاو و زوری قصه خوری نیوان خویان بوده یرامو حیف امشم لبیر بچه روژیک لوتیل کونتینینطال کتازه چوبوین جنه کی خزمتکاری اوتیل سری بجورده کرد کمال ووتی فرموشتیک بخواوا، بدست اشاره کرد که بردنگ د ویل درو پیوتبو کمترین قصابکن میکروفون لجورکتان دهی ضبط دکه کچوینه اوتیل کيتر اوجنه دگلی کیتر ده هاتبونه دیدن من باسی خو کرد ک مردی مهندسی کارخانه بو ل جنگی کار ده بر ماشین کوتو مردو دو منداري ل پاج بجماوه حقوق مردکه او حق خو کروج 8 ساعتیان بشو یان 8 ساعت بر روز ل اوتیل ماندو ده به تاریخ خو مندا حالی زور ناخوشه دکتور کمال با سی فرمایشت مرکز لنیني بودکه که خمه خو سوسیالیستی د بیت کومونیستیو همو کس حالي خوش ده جن لدين درچو د ده ديوت من دلم منو مندارم چې نه خوئ او درې په مركز حالت خوش ده پروژه د گل کمال له اوټیل درچوین راستی پیمان وابه تظاهراته کله شوروي قطرو نه ده کمال وتی با راخینو اوټیل غوتم هر دچې بزانم چيا درم به خلق ده خړتا له یک پرتقال چوکول شین بو او خلکه د انویس بیګنیو یک یک کوبر 21 ک داگل کمال قدمان لیده دا چاون با کوچه که تنگی بنبست کود لدرگای کوچه نوسرابو سلام عادل وتم وره هر بله قدر شوی عرب نهیره اگر کوجران اوال موسکو نو تن لسر کولانان دنو سم لماسکو را راستاتینا فرگی بین المیلالی استمبول که سوده هر بدولاره زور منشد کردی بودیاری. دیاری چوم دوکانیک داوای جغارم کرد که براوتی دخیله توب چو پاکتیک چای لیبتونم باب کردن هر جغاری یکدیویه دادم و زیاده لیان استیام. پاکت چند و کاریو لبند دو کانکی شرده او. چند لوس یک جغاری خارجیم لکاری. لتیاری برای عرضه زور من ویسکی وادگا کاری که بدیناریک بود. لبرداب پینس دینار. چمدان من پر کرد. لدوو پتر ممنوع بود. اما اگر لیان ساندین آواشش، ریس کی خم انداکن. ساعت یکی پاش نیو شوگین فرگی برد. کمال لپیش تا چو تفتیج بکری افسره باعث یکوتی کو په ناسد ديتي وتي کوردن کمال وتي بو اوش کردګو وتي برونده احسان شهزاد چاو نورمان بو یم په دکنين وتي دلتان خوشا ديال لروسیا باشا ته نوا وتمن بلې باشا ته نوا بلهم من نه کمن چمدان دو چمدانه پر له مشروبه کنین بشکنین لسای سوال کردنی امه وا یک جار باشمان بو پیدا کرده بو حاجی جوندی و قنات بونه اندامی فخری کاریزان یری زور زو چو ما کردوستان و پیامی غفروفم به برزانی گین برزانی فرموی روز لا پیمن بستن دگل باسده که خود مختاری من بدنی خویان زورین حولده کچی است دیانوی به هیس حقیق من تسلیمی اوان بكين. مردن ست جرلو بشرفتره که پش او همو خوین رجانه سر بو دج من شورکه مشرمه زاری بم. اگر مصلحت شوروی لو تسلیمونه دایا مصلحت کوردی ته دانی لپاش اعلان خود مختاری او نه کله حزب تورابون همو دسته او بستهن هات نه ولای بارزنی او افویکردنو لچیا دغل خماندشه وک اوې قد نیوان مان ناخوش نه بو به سیکه پیمان 15 سالن دغل روز بسته بو 21 نشن برد بو ولای خوانو چاوي همو خندوارو بیکاری کوردی شي په پولو پلانو قنده بو د زاني زحمت امشورشه دوباره وجرن زندوباته لیمان کوته گندالفان هچو چوکر دهاتنو ل لاند دولت وقف توګوان د قلب ارزاني د کړدو هر خریق بون لنای وبرن روجي 29 مانګي نوي سال 1971 11 ملال نجف او بغداد هاتبون کچاویان به بارزاني بکوي له حاجي عمرن چشریس زور د سټله بغداود هاتن ملاکان ملقه و خانه حجی عمران دیت سالح محمود یې انده قلبو کوتي تو اشوره دی وخم بزانه او ملاعنه من حز لچاري ملا ناکم چوم له مال الیا خوتم. ختم له خوکم به دنګي تفنګان را پريم دیتم له دوري مال ملا مصطفی تقی کی زور غالبه رام کړ کابره کم دیت حل دیت هرام کړ مهالن کس لد درچ مهالن رګان مدن سلیمانی حاجی بلجی سردسته حراسکانی بارزانی بو كولانان کولانان بګرن قیمه دي تقه کړ وتیان بون بیان لملا مصطفی تقه اندوه دګن اوش دا کلتاون وخت بو شهید بم حرام کړ پیوی چا بن مېن کوجن بس هاغي بیان ګرن خبريان لی ور دګرين کزګوي بم من هر او هاورم د کړ بنو تفنګشیاکان داده سورامو لپر بونبای کلابن ماشینه کی تویوتا وقایم کړه بو تقی پتر متر لجه خوم پر بلام نکوتم. راننده تویوتا که افسره باسی و با جلی راننده شوا دگل ملاین تبو بو لبن تویوتا و تقند خوشی کجره بو. ملا مصطفا و دکتر محمود لجور هات ندر. برزانی سروچاوی خینایو بو. زور شاد بویم که نکجره بو. با بسولیمان حاجی بدری گوت مین کجن. زور زو تقاوستا. هین دگل ملاکان که به اودست و جوری تر برد بو کجره نو حوال کس من چومه جوری دانشت نکوا یک لملکان لسر کرسیگ دستی چنه و چنهی دابو. دانشت بوام زنی زندوه کبوی بای چوم پرچه بوام بابن هنگلی کوت هر لجه دا مرد بو. رام کشا سر عرض. کلاککانی تریشان هنان او جوره اگر بر بوب و جوری نوینن پیو لدو کل دخنکا. دګل علیا خورده خو من د جوړي اګر راکردو توالي من به خو نه نو لبر دوکلو کوخه چا منصورو حلمسو بو من یېن کړم معموری بشکنینی کلاک ګرفارم بتال کړم یادښت نو سراکان یې ساعتو پول یېنم کو کړدم هیچ تیکیوه من دست نکود که ملابوی حاتبن بارزانی بکشن لگیرفان یک یکی کنده روش بروشی سفر لنجف و نصرابو و کشو لأوتیل مختار بوین بیانی سوار بوینو گینا فلان جگو فلان شو رامان بوارد من بابروی خوم ووای بوچوم ملاکانش خبریان لو پلانه نبوه نردو یانن که ایوه دگل بارزانی قصب کن دزگاه کن لقد یک یکی کن بستوه که امان زبطی دنگه اگر بارزانی دستی ب دنګخه خوې ماندوي ملاکل برانبر برزنی د نشته هرکه دګمه کړدوته بومبا بو او بو تقیوا بو خوی بو بو پنجا پرچش زیاتر گوشت خويني به میچ جوړا کوو نو دو افسری باسي به نو راننده کملاکان جنئناسبو تروري برزنیان پی اس پی را بو تیږ جن را بو ک برزنی لفلال متق میوانند بیني ماشيني تويوتا لبن دیواری او ماشینه کی تریشان که کجری پارک کردنی لوی نه دورتر دورت راگیر ابو بلان اوروشه برزانی لو تغه کی دکدا چایو به ملاین کود راننده زانی بو ی کار لکر ترزاوا بونبای بن ماشینی تقن سربانی و تاقی کی تاو حلوا شندو تکو پکی دا گیشتینه سر ماشینه کیتر دو بومبی زور تریجو استوری لبن قائم کرا یازده که لکمان بنگلخستو دوانیانوال بر یک چوبون نزن را پرچین لکویه دوای دو روش پیوی صدام هتنو حشایان کرد که دولت آگای لیه برزنی برزانی هیچ لومه صدامو دولتی نکردو بسرخوی نهینا او روشه دا توانم بلیم لهمو روشه کنم تالترو دوی یکی شیرین تر بوا که دم دی برزانی لکشتن خلستوا دویی لبغدا بیست موا که اجودانی صدام تلفونی با کابره کی کردی آشنای کرده بو که برزانی من لکول دنیا کرده با. دو منگ یک دوای او بلایا کردی که سوریای گیره که چمدنی که زور جوانی بدیاری با هنابو. اویش بو برزنی هینا بو. اویش بوانبایگ بو لهر جوری که دابتاقی با کس لیدر ناشو. که اگر مسعود و چند کسی که چوبون بغدا لگرانو دا لسوچی خیابانی که بغدا برگله درابون. عارف حمید لعریف ح اوانی تر سغ درچون همیشه لو چوار سالهی قیرانه دا دولت خری که لبیندانی شورشو برزنی بو وگل دوائی شرفنامش دا گوتو برزنی برزانی لکوبنوی که گورده فرموی تانکو تیارو توپی دوجمن پیمان نوستا دا ترسم پولو پلو ترامبیلو قصر لبین تان راست او بو اوانی که چندین سال بو لشورش بون واشیتی درجه پولو قصر و ترامبیل بغدابو بون که با اصیر رون دیانزانی تازه اواند طاقتی و برد شریان نماوه. لماوی چوار سالشده، ریگوبانی زورپان و قلای زور قایمیان لکردستان درست کردو، آشکره آماده هجومی دی امش همو همید من کوتوب و سر ایران و یرمتی اوان. همیشه بساتان لفرماندکانی پیشمرگل تران و شارکانی تری ایران خریکی خوشگزرانی و پول خرص کردن بون. ایدی سرد نیا شنم. لسالی 1979 شورش بجارک بناور رک بود. لسالی 78 دب عصیک هزور پشت از توربون لیارید دانی روسان ریانگین کرکوک خانقین سنجر ناوشی شیخان بر خود مختارینا که واتا هزور شریان بو ساز کردی ناوو دیسان شر و برگرایی خوش‌ویز لیردا دینکو تی بچی بشی و هشتی خوان نویکتی به چیستی مجهودی هزاری مکریانی تله بچی هشت و نو لشیکی تر دعیت شوتن آرامو بختوار بن.